اوضو بالله من الله الرحمن لله رب العالمين الله الله و آله و الطاهرين المعصومين و پس و در بحث مجمل و که آقایان به اجمال منطرفه شدن در کتب عهد سنت یک مقداری دادیم این مسئله تفصیل داده شده و صحبت شد که بعض این تفصیل ها کتب تفصیل هایی که موارد مساقیقی دادن بعضی هاش خمساقا نقطه اصولی داده اما جای دیگه به اصطلاح متعرض شد و از که در کتب دی از از مسئله مجمن که علمان ما غالبا و علمان ما مجمنون بیان آوردن حالا بود دو بخش کردن یه مجمنون بیان در از خطورت سنن بخش بیان آوردن جدا آوردن مثل همین شون این رو در سه فصل آورده یک فصل در مجمع یک فصل در بیان و تحبیل مبین بیان و مبین و فصل سوم که در, در آنشون و تحبیل ظاهرم اگر امبارتش باشه بحث ظاهر و قدیل بل از ظاهر و قدیل که بحث ظهور رو نترک کردن بحث ظهور رو آزتاً علمای ما موادث سبرمی در همگه اصلافی از اول حصول از عوامه به بعد ما سردش شدن و موادث کبرمی شد علمای ما گذاشتن غالباً توی بحث حجیت زن که این تو بحثا حجیت که رسیدن و جزوه امارات و اصول اول متعبصه پرد شدن بعد متعبصه دن شدن در اونجا جزوه زنون محتوره رو بخص حجیت زهور قرار دادن اون مواقص کلی حجیت زهور در اونجاست ایشون برانه از سن خود تا صرف و تحبیلی در زهور و تحبیل زهور یک بخش خاصی رو قرار داده و مثل بخش قبلیش یک مقدمی ارز در محنای ظاهر و بعد هم مسادیدی و از ظاهر در تحویر کرد حالا از حالید که این بخش دومی ایشان که در و بیان همون بود بعد متعرض قدیه از مسادید شده منجمده مسئله ثبوت اول این مسائل بیان و همین رو ما بارده در همون مبارس و متفبره برمس کردیم اینا سعی شدن در اینجا جا مسائلن یک برمسی رو که مستقی بزن به اندازه آشنایی اجمالی و خوب خوبه انسان روی نام بلکه با رو که ما حالا دیگری. یکی مغزار انتیار هر که برست که شیوری مسائل رو تعمل کنیم به یکی هم مسئله به اصطلا روش برست چون آقایتون آقایتون آقایتون آقایتون ها رو به اصطلا نوزی ها روش های انتظاری و اقرانی و تجریدی گرسند این روش ها بیشتر باید در اصول به نظر ما روش های مستعایی بشتر بشینه بیشتر روی باقییت های باشه مسئله ثوباری رو که کردن آیا بیان باید مصابیه اون بیان باشه در ظهور یا یزیوز و همیتون حد نامه این یک وقتی من توضیحا کرارا نهار کردن یک فاصله زمانی نسبتا محتنابوی مباحث اصول بسون افضاع و حقل سون ندرس هم و خیلی شدید به کلام شده خیلی شدید یعنی مباحث کلامی در رسول وارد شده و حتی اضافه بر اون غالبا این مسائل رسولی تو زمین کلام آمده یعنی فرستونی در زمین کلمات فرستونی قاضی عبدالچنبار نمیدونم فرستون عبالحسین بسری مثلا اینجا ببینید قالم چرسی لاقو در مسابات و قال عبالحسین بسری که از بزرگان متکلمین محتضل است یجوز و انیقون حد نامن جنفرن میشه و بعد برد خیلی این بحث و ما در اناوین دیگری داریم بگیر اناوین داریم که اگر یکی جنبه یک بیانی پیدا کن لازم نیست که حتیم در صورت و قابلیت ها مثل اون مجمل باشه بسیار فرصمی داریم که ما اگر حدیثی داریم که عام و خاص داریم لازم نیست مثلا آمشه این تقییات سنده باقنسان مثال اون تقییت سنده از وقت لازم نیست چون بالاخره خاص با عنوان بیانه لازم نیست که بیان حتما اقوا باشه شما که که یا خواب که مخاطب می‌خواد بفهمه اونجه که خواب رو میخواد بفهمه با حالتا اینطور که تسلیم بشه به نیستر اگرش مطلبش یه رموزی داره یه قوارب رویش شد با و هم خیلی وقتا اصلا خوشخص نشه خیلی وقتا وقتا هم همین جنبه نه وقتا وقتا قانونی همه وقتا هم در کتاب شدیم اینجور باشه اون جور آیاتی که در جنبه های اوحام ها ورموزینا داشته باشه ما اونسن اونها در مشکل دید ولی که این بحث هست مشکل یکی از مهمات در بابر فرم است که باید در قوانین نصوصش تریح باشن واضح نیست. بله اون بحث بیده نیست وردشن ورد اون, برد اون مثل مکاشقات و خابونی ها نیستی با پس یه بحث دیگه همین که آیا بیان باید به لحاظ خوبت و خبرت. ما بیشتر ماها بیشتر مسئله توی موارثی مثل آم خاص داریم که کلمات و علمای ما هست ممکن است آم خیلی تری و سند تری باشه خاص اون قوت نباشه یعنی شون خاص بیانه مقدم میشه ولی به اون خوبت دسترن نباشه اینجا مراد جرخوبت در ظهوره خب ممکن است خاص خیلی قلی نباشه ولی این طبیعت خاص بر آن مقدم مثل یه چهارون که ایشون مطرح کرده ای که از مسائل بسیار مهمه در اصول مثل نایخوی هم هم در همه در مفت در آن روی و تخصیص گذشت تو کلمات و ما زیاد آمده اینقدر زیاد آمده که دیگه طبعا گفت ارسال مسلمات شده لیکن فعلا ما در اصول خودمون مثل این محاضرات من روما جای این بحث رو نداریم و از دائمه روی چون به قبول شده و اصول اقلانی روی مثلا مکتبه اقربگر هایی که شیعه داشته. احتمالا بحث نگردن اما در کتب اصول دارن از کلم اصول یه بعضی مسئله ترک که اصلاحن اصلا ترمش داره که این یعنی چی؟ اگر یاد آلین باشه اگر پشت امتحال نیاز باشه تو بستی این که همه اختیزاری میکنه اونجا متعرض شده چون آدم احتمالا میده که از این بست معنی را داره همه اختیزاری اختیزاری اختیزار داره که عاده یا قضا حتی اونجا توضیحات درمز کردیم و اینا ریشه هایی مثله و هایی ولی داره الان مسئله یک شهارونی که ایشان دارن تأثیر بیانه این مسئله که چرارن یک چرارن در کلمات علمای ما میاد تأثیر بیان وقت ایشون نویشنه که اما ان وقت الحاجه تأثیر بیان فردشت به الکول علم کناهی تأثیر نمیشه سوا القادلین به جواز تکلیف به مالایوها مسئله رو یک به مسئله کلامی که تکلیف دو مالای و صاحجایز هر چی جایز, جایز نیست اونجا گفتن اش داره و اما تکلیف اون وقت کتاب الی وقت حایه خب این مساله دلاوات اورک عامه ها خب کلی رو هوش عادیه این چه مسئله ای مثلا شما یعنی چیز شنده است بهرچکه میگه این که علما شهر جوهر مهمان بود و فرشی شد اونجا سرو جمعه دو روز بشه بشیم این مراد من قلم های این مشکل نداره داره خیلی مشکل یعنی به عبارت دیگر من ارز ما در مساقل اصولی خودمون یکی مباحث به اصطلاح و نفسان برمیگرده به غرف ما یکی بلا حاضی ای اینکه این ها تطریقات شبیه شبیه هم چی آن از وقت خطا این در قرآن چی جوریه رو من چه خبتباً این کتاب نداره این روز احکام آمدی سنیه تفریقاتش روی منطقه در بید بروری تفریر بیانهایی که زمانه همینه متحکر ما میاد این دو یک مشکل دیگری که غالباً الان در ادهی دیتا شده و شما تاریخ بکنن ما در از مسائل حد علم ما میره. نه حد واقع اشتباه نشد درست چند حدیل ما این از که رو که من مستعیتن فالی اختیار از ما هم خب این سوال از ما هم کسی مستعیت نمی که از ما ساده کسی زمان انگل مهم مستعیت نمی که فکر چونه بودن این تخصیر از وقتی های اگر وقت از اینجا با دیرین من نمی کنم با ما یعنی چون این ما، که طرفش رو ضروری گرفتن از وقت حاجب نیمشه از وقت خطاب اشتران قبل از وقت خطاب تحقیل از وقت خطاب بین خطاب و حاجب گفتن اشتران در این رعی علمای ما حالا نه سر اون مصداقیت و تطریق خارجی شمه هست از این تصورش چیزی میشه ما یه مشکلی که داریم اینه که حالان نه سن غربی هایی یه مسئله رو بررسی رو کن خود الان دیگه غالب و حفظه های که جمعان ها تا کلاس کلاس 9 و ده و 12 دادشها ممکن برسی باشن من حیث یه زمینه های علم روز در زمینشون هست یا مطالعه میگنن میبینن مراجع مثلا در اصطلاع قرار بگیار این خبه مسئلهی در صادق مثلا ما صادق آمد پس ما باقی نبود یا مشتبه نبوده نبود یا حاصل روایت رسول الله نیست این خب این که فتحاً تحصیباً از وقت حاجت دیگه بیند این بحثی که سالانهای خوی هم میفهموندن رضایمون خصوصات حتی در فتح بیان خصوص هم نواشه اون این رو باید یه مقدار کرد که ما که الان از امام صادق روایت داریم این مناش مثلا زمان امام سجاد مرده معنی که خودش نمی‌شد ولی می‌گفت نه نی. این این تقدیرین ما از امام صادق طبیعت فرد سر قضایای خارجی نیست مثلا بگیم قران قضیه تا سال قران نه بودن شده سال 300 نه شده خب اله قضایای خارجی اینطوری اما این در زندگی مردم بوده یعنی با او اونا سر کار داشتن از این قبی نیست قرار درمی که این دقاطرشه حده از موارد که ما مثلا برخورده به تحقیل قیان داریم مشکلش مشکل اینه حالا من یک مختصری صحبت بکنم راجب به و زهر اصحاب و از و جماع از خوابنا از خوابنا بیانی فقلا از و زهر به از خوابنا مثلا از خواب یا مکتب ظاهری بعد میگره به دعوده نهلی ظاهری که مکتبی رو درست شده مزار دارم. علم تنامی. و زن برکی و جمعه سبین الفقه جواز ترخیر بیان المجمل دو رو ال قیلی و در برکی رو جواز بیان عمر میشه عمرو می داد عمر دون تاریخ مثلا اینکه بیشم علما پیش من آمدن و یه تحصیمی گرفتن بر از جمعه بعد از دو رزیون علمای کامدن خضور بودن ساختشون صاحبشون نمیشد دونه غیری و زنب عوال حسین بحسی که از متکلمینه الاز جواز تأخیر بیان مال لحو ظاهران که مجمل اما مالهو ظاهران را دوست اومده فی غیر ظاهر که آمه مطلق و من نهره فقال یجوز جوز تحقیر رو برای مهل تصفیلی ولا یک جوز بیان رو اجمالی در کردن اینا سر کردن روی که تصور میکردن اینها اغلایی حل این قضیه رو بکنن این مسئله تحقیر که مثلا مهند کن که مسئله چارونی که در کتاب تو زهن من من این ای فکر کردم تو معالم هم داره تحقیر برای اما آقای موسف یه ندارن این وقت و کلن بر چون قبول کردن تحصیل ریان از وقت خاجر جایز نیست قبل از وقت خاجر جایزه اجماع و تحصیل و ضاقیق و مکنال از یه هر از وقت خاجر خب میگم بگی اینا چون که خواهده خاطر مزحله مذهب یعنی خاطر به اصلاح در روارات شیعه تخییر شد اصلاح که این وضعی سی اصلاح این مسئله یکیش که نفسه یعنی اختبار اغلالی یعنی هم صورتی که شما در پس صورت پتیزش با بچه ها خود میکنید یکیش اینه یکیش به اصلاح از شواهد کتابی و نفعه تدراجی در بیان که در شریعت محددسه بودی و یکی هم خب برست که تغییر مسئله و راهها ها و خاص خودش به نظر ما در تغییر مسئله دقیق رو در واقع تکالیف دو مرحله این تکالیف خیلی کوقلاده یعنی اساس دو مرحله یک یکی خود تشریف یکی هم مقام انتصال این تا اساس کار مقام تشریف هم از خصاصت مشغل و مقدنه سال هم راجع به همده اون هر سر نیم از تشریف سه تا مبادی تشریف داریم مبادی جهن داریم ملاکات یک دوم دو بسن و و سوم سو اراده و کراه اینا قبل از جهن بعد هم شد باز دوم مرحل. از سه مرحله بعد از جهن یکی مرحله ابلاغ یا به تعبیر قرآنی قرآنی سروی به انزال میکنه 11 رکن به قرآن رو توید برای انزال یکی مرحله انزال و دیگر مرحله به اصطلاح تنجز که مکلت ایل پیدا بکنه و سه مرحله امتصال این دو مرحله در امتصال تأثیر داره یعنی اینکه این امتصال واضح میشه یا میشه تا به این دو مرحله چون به مجرد جهر این انتصال که نمیاره باید ابلاغ بشه بعد از ابلاغ هم باید به صورت به اصطلاح مستنجز بشه اون باید مسئله انتصال یا اسیان مسترده اما مسئله جهر خود باید بر اون سه موادی از ملاکات و غب و, و اراده و کراه هم باز اون موادی خاص و خودش داره این دو محل فوق الازمه هست این اتصال طبیعتش اینه بدون علم و بدون ترجص اتصالی معنا نداره لذا باید این پیدا بشه این علمم عرض کردیم در حقیقت دو مرحله داره یه مرحله یه مرحله تعلیم است که از طرف خود مقنن میشه که اصطلاحاً انذار میگی ارسال رسول و انذار کتب میشه یا انذار این مرحله مرحله انذاره که از طرف محنن انجام میشه اصطلاحاً ما اینوز میگیم که قانون بعد از اینکه در مجلس تصویب شد باز به رسانه داده بشه. رسانه ای بشه این رسانه این کلده همین مرحله منزال یا منزال کتب و ارسال رسوله یه مرحله شم مرحله به اصطلاح وصول به مکلطه چون اگر وصول به مکلط نشد ایم پیدا نکر و وقیه شرایطی در بابه امتصال مستحه اون وقتی که امتصال به ایسیان معنا ندارده بود پس ما دو تا ایم در حقیقت میخونیم بیان دو تا ایل. یکی که وظیفه مغنمه یکی هم که به اصطلاح خود طرف بعد از اون مقلاد لازم بهش میرسه اون می که این که وظیفه مغنمه این اصطلاحه بیان بیان این تأخیر بیان از وقت حاجت اینه یعنی اون چه که وظیفه محمده اون علمی که ما خودمون پیدا میکنیم اگر این پیدا نکردیم و ارتکاب حرام هم کردیم این بیشتر جنبه موعظه ای داره قل حساب میشه و اینا معلومه فقط ما تعبیر بیان نمیخوایم ما علم نمیخوایم یعنی باید یک بیان صادر صادر بشه یکی ما علم پیدا بکنیم فقط اینکه در این انتصال سر می‌کنه مطیع هستی یا عاصی تو مرحله انتصاب اقاعداد انجام میشه آرسیان از این دو ثائر یکیش رو وظیفه مقنن میدونه که اون مرحله امضاء ده اینم جزو وظایف مقنن یعنی مقنن در زمان ما اینطور نیست که مجلس شورای قانون تکیب بکنه به مجاربه تکیب و قانون کافی نیست باید به وسایل و طرق متعارفه اون رو رسانه‌ای بکنه که تعبیر بنده اول این از اول ما شاد تعبیرش تا برسونه به حد به اصطلاح یک حد مشترکی ما بین مقنن و ما بین به اصطلاح مکلف یعنی این اقلاق و این انزار ارسال رسول و ارسال رسل رسوندن حکم تا حد به اصطلاح معرضیت یا اصطلاحاً خصوصاً معرضیت تا حد معرضیت قرار بده در مقابل حد معرضیه، حد وصول شخصیه. این که لازم نیست مقامن بیار در گوشه هر نفر به تنوعی یه گوپن این وصول شخصیه. ممکنه نمحلیم. به صخری هست و حرام است و قویه هست و منتنه است و مستریر دزنه. ممکنه جامعه ها رو شاید وقتی این مقامات رو شو پیش میکنه که حد وصول شخصی هم میسوز باشه. اما اونی که الان متعارفه حدش حد معرضیت اصطلاح ما حد معرضیت رسانه کردن تو رسانه یه گفته بشه این معرضی چرا گفت این چون یه مقدار با هم باز خود باز مکلت تکان بخوره مکلف گوشه خونه خواهش خواهش بذاره تو حب به امکان داره امکان داره امکان نداره اما اغلاب بناشون به این نیست بناشون بگیم شده که خود مکلط یا شهرن به اصطلاح نوزی ها اون هم به خودش یک تکانی بره به اصطلاح این رو اصطلاح ما در قصور اسمشون تحس هدف از سحس هم همینه مکلط هم خودش رو به حد محرزیت برسنه یعنی آمدن یک حدی رو تصور کنه. هم مقنن برسن به حد محرزیت این اسمش انزال. اسمش ارسال رسول به انزال کتاب یا به تنگیر قرآنی لفنگر کنگی و من بله به هر سی که این کتاب او برسه منشه انزال باشه انزال یعنی این محره. که برسن در حد محردیت که اصول کنگی در حکمیه فحض لازم هست اون هم همینه از طرف مخلصه مخلص هم فنس بکنه چه مقدار تا حد مرضیت مثلا روزنامه رسمی هست مثلا اداره هست مثل یه امری مربوط میشه به مالیات اداره مالیاتی بره از اداره مالیات سال بکنه چی چیزی هست یا یعنی. اون اداره مربوطه روزنامه مربوطه روزنامه رسمی دولت روزنامه رسمی خانون این مراجعه به اینها میشه حد مرضیت بس یکی حد معارضیت داریم یک حد وصول شخصی داریم در به اصطلاب مرحله بیان تا حد معارضیت این تأخیر بیان تران میشه مال این مرحله است اون مواقعه برای تعقلی و نمیدون قوله اقابلا بده مال اون مرحله اینکسابه یعنی اگر مختلف تا حد فهضم بررسی کرد و به نتیجه نرسید اون رو انجام بده به با قبر احباد بیان اون لا بیان اون جهان مال مرحله این این بیان این جهان مال مرحله بسیتا جهره که وزیتای جاهره اون قبر جواز تخییر بیان از وقتها هاجر قبر تخییر بیان از وقتها جهد. این مال این مرحله در این مرحله به شما میگن که مخمم قبیه هست بیان رو تخییر بندازه نسل وقت حاجر شان ندارم اما نسل وقت به اصطلاح بعد از وقت حاجر و زمان حاجر این قبه داره حالا ارز کردم این طرح مثله خب یه طرح مثله اینطور طرح که ایشان نوشت، یه طرح مثله به این صورتی بوده که ما خدمتون ارز کردیم و اصولا ارز شد به طور کلی ما در فقه ما که ایشون نعلمه که تو زهنم نیست او شاید خدا هم گفتن واسه زهنم نیست که صحاب هداره قائل باشه ما در تقریب شیعشونی مسئلهی به نام تقییه اون یک مقدار قواعد و اصولی ما رو هم میزنه یعنی ما در مسائل اصول یه دفعه تقریب به عصا طبع, ت... ش... طبع صحبت میکنیم یا همینطور که الان گفتن مثل متکلمی عقلی گرایی داریم یه نه. یک دیگری. یه جریان دیگری مثل فرصه حوامر امتحانی مثل حوامر طریقه الا آخری مسائل دیگری هم در قصه داخل میشه اما بحث دیگری الان بحثی که ما داریم در قائده اصولیت من کردم این حاجتی که اینها گفتن زمان انتصاله این بحث این است که شارع میتونه بیان رو بعد از زمان انتصال زمانی که بعد انتصال محدوده بعد از مذی زمان بیاره چه طرح دقیقی ندیره بگین؟ قضیه تشکیل میداد مثلا آقا بگه علما رو جمع کن، یک دوشنبه بعد بگه حالا این روز جمعه علماء رو اکرام کرده و فاسق و غیر فاسق‌ها رو احکام روز دوشنبه تو اون جمعه علمای حضور رو احکام می‌کنه و فاسق جایز نیست احکام بشه. خب این واضحه. یه یا اگر نداده نیست کسانی که طرز تحریم مالایسا یا مثل شیعه که عناصر دیگه‌ای هم داخل این مثل تقیه. عمومیت برای تقیه زیر سر درآموشه. این هست. این اصلا اصلا صدرت تقیه. این تا من ندیدم عمومیت میگه آیا بر ما سؤال واجبه میگه بله. آیا بر شما جواب واجبه میگه اگر مؤخر خاص جواب کی اگر حقیق تو می داره برای که تحقیل جایزه. نه خب همون تخییر شرایط اجتماعی در نظر می‌بین سلاح نیست گفته میشه لازمه که اصلا قضای سیاسی باشه یا مگر گاه وقاشون بعضی وقتا قضایای بسیار عادیه یعنی فوق العاده عادیه مثلا برخوردی که شده برخورد یه فرسه شدید اجتماعی که پرچسر زندان و اعدام و کشن. همین قصه که از موسیقی جرپر کوفه که میگه دختره که جوان عروسی کرده بود بعد از شب زفاق خونی بید چون تا وقتا هیز نیده بود اختلاف تو خونه یا خونه هیز از ابا همینه رو پرستم و از رسیم از موسیقی شبیه منا بود از تون منا تو خیمه بود بعد رفتون اونجا در دو دم از دم خیمه،, دم خیمه غلام سیاغی ایستاده بود و گفتون تو فرانی هست با بعد از حاصل عرض میکنه که دوست داره که اینطور ای عرض از به من و بود و بلند شد و میگه الله الله مواظب باشوش تو شتایی قسمت اضافی باشه خری با خون در را به خرج بین این بن که خیلی عادیه اما قصه سر میخونه واقعا 5 سال باعث به پای دفتر صدرنگ با منصور یا با هارون انسان که حالا این چیه من نمیفهمم واقعا خود من سر برمین یا ممکن است واقعا ورکوری بوده که سلطه حاکم حاضر نبوده بوده در دعیمه حالی حتی به عنوان تقیید سوال بشه به آرام شاده این روایات طبیعی استه نیست برای روایات همین چند تا روایاتی که رضا آل از هم هزر رزا و علیه خاله دا که ایلی نا اینشه عجب و اینشه نا همسک که ما بحثش کردیم که این فرعشر رو فقیه هم داره. جایی ممکن است صری سلام ندونه. ما که یعنی احتیاج وجودی که از نوع استدواز وجود همینه. این شأن عجب ما این این شأن این در حقیقت فقیه سلام نمیدونه. شرط تقسیم در فقيه 12 که نماز در دار قضی صحیح الهی چون ادعای اجماع شده مشهور امامیه فقهای شیعه بین نماز باطله. از اون طرف هم خب از موانع قدس ها منی شده، که بگه خب نماز بخنم چون این زمین نماز نخونم حرف بری هم نیست در اون اینجا تقییل در حقه اخفاق فتوا میکنه این شئنا حجب اونها بینیشد اینه تو بیادی که قضیه که ما انصاف قضیه ما, ما نیستیم که الان حاجت دیت. پس باید بیانی باشه. نه اصلاح حاجت پس چه شده بیان اگر بیانی نماره نه حاجت که دست بیان نمیشه پس حاجت پس به همین روایت کرب رو خب من آقایی که بحث مفسر کنم ببینید شما خیلی از پول ده ده, ده. ده. وجهت که خیلی شاد ده به خسر آدمی نسبت استاد شده 20 عرب وجه با 34 وجه با 30 و 6 وجه و, و, و, و, و, و این ای این به مسئله اطلاعی مردم زن مردم و بچه بزارده از محتلال واقعه الان اگر ای نگاه بکن پاید یکیش را میده وجه بشارده از روایات وزنین ها به باید اگر انسان بخواد دقیقی از همه کلمات و بعثها و رجال و سلم بشه شاید سه این بحث رو بگشه خب بح... یه فکر انسان اینکه این چیو محله ها چلیه در... این من در اینجای میاده صحبه کلم از که باز یه مشکل در فقه ما هست یکی تو کل فقه اسلامی است؟ چون اینا به این تصوره اینکه از اول محله تا وقت رحلت رحلات شریفشون مثلا 23 سال بوده تقریجاً برن کرد خب یه دی از این مثلا اگر راست باشه که حرمتش بود سال پنجم یا شیشم هجرد باشه یعنی دی از این در برد شهید شدند و به را میخوردن نشراب پر بودن از فرمین این تصوری این مطلب برایشون مشکل بوده از, از این با این مسئله اصولی حل نمیشه این مسئله اصولی این قسمتش در نظر گرفته زمان جعب رو در نظر گرفته زمان امتصال و زمان حاجت به ایشان در نظر گرفته شده و بیان رو ما بین زمان حاجت و بعد زمان حاجت خب انصاف رزیه اگر ما باشیم این سنخ بحث است میگم من اول حلس کرد که بعض بستشون یه جود یه کارمیشو در دریعت تطور دقیقه نمی که چی میخواد بگه. اصولا ما اکثر هر پیله اختیاری انسان علت و غایی داره. در باب جمع دو تا علت داره شخص. دو تا غرض داره. وقتی میگه به بچش برو نان بخره. این دو تا غرض داره. اصولی در اون تقریر دو تا غرض داره این کار در نظر میگیرن. یک غرض ادنا است. یعنی غرضی که نزدیک‌تره. این همون غرضی است که میگن مستتر و جمع میشه از اون تقریر پیدا نمیشه. اون بحث معروف که علا ایقال معنا به لفظ نیغارنو اینجا چی جور مثلا چه معنایی رو انشاء کرده چه چی گره خاصه که بلا فاصله با گفتن مطرح شده خب اینان گفتن اونی که خاصه و بلا خاصله مفرتب شده قررز ازنا اسمشه اون قررز ازنا ایجاد انگیزه، ایجاد دایی قررز ازنا تحریف مفتلته دروی ایجاد دعایی رو کنه، ایجاد انگیزه رو کنه که دارو باز کنه بر نان بخور. اینه بهش یه انگاره زدنه. یک کاره اقتصاد هم داره که در حقیقت این دو تا برای دعای جعله. کاره اقتصاد هم امتیازات حاک در خارج. اینکه می‌یو نان، با که میخواد لقلمایی بخوام باشه نان می‌خواد. لذا این امتیازات حاک در خارج این کاره اقتصاد. اینه که گاهی میشه گاهی نمیشه. در مقهان جم یک قرض اقنا داره اون همیشه مترکت میشه اون تخلق ندارو اون ایجاد دائم اون تحریف اون تحریف همیشه هست هیچ وقت نمیشه احمل بکنه تحریف نباشه، تحریف هم مش damned تخلق هم ندارو بلا فاصله بعد از انشان اون تحریف واقع میشه یک قرض اقنقه اقص داره که اون فاصله داره اون روی واقع میشه یقیthe واقع نمیشه. این اصطلاحه اینجرسون روشن حاجر و اون امتصال زرف امتصال و زرف اتیان و اون عمله خب این چه شعره مقدس به اصطلاح و محترق اعتبارت قانونی اصلا به طور کلی در اعتبارت قانونی این به طور کلی وجود داره که تخیر بیان از وقت حاجر اصلا معنا نداره چرا چون اون قرار احساس اخساس خب به خاطر اون قرار ده اصلا جرد کرد پشید کرد اگر میخواد بعد از اون قرارداد باشه و قرارداد معقره باشه، جلزش نداره. نه، تازه اول بیان بعد از قرارداد. با این فرض ها و اینجا اینطور شد. ده. پس به اینجوری این سنخی که اینا بحث کردن، متفهم نکنه بگیم یه قضیه یک داره. طبیعت قضیه اینه. هر جا که جهل باشه هدف نهاییش حقا رو در خارجه نمیشه بیان بعد از تحقق بیاد من ما که بگه روز جمعه مهمان بکن دوشنبه بعد از جمعه بگه من مرادم این بود که علمای قدور مهمان گذشت و تموم شده بلقیه اطاعت کردی یا اصیان کرده درسته کارش مثل تموم شد این بیانشون چه پاید نیداره؟ دارد. دارد. چه پاید نیداره؟ چه پاید نی یه قرض، قرضی که بخواد دنبال استیفای قرض بشه. و اگر چ این کاری بشه، چون اینها از قبیل عقل عملی هستن که ممکن است به اصطلاح وجه مغیر بیاد. یعنی این کار فی نفسه قبیل باشه، اما یک یعنی مسلحت خارجی باشه، یک نکته ثانوی باشه، یک جهت دیگری باشه. این میشه چطور که جهت دیگری میشه تسلیفه. اینا از احکام عقیریه نیست که قابل تخلق نباید چون اینا جزء اصولاً این مواهز بیان و مجمل و مبین اینها استراحاً جز عقل عملی هستند. در اون رسمتی که مرضی سیاست و چون عقل عملی مخلوق قدما یا اخلاق تصویی کردن یا سیاست و مدن یا منزه این مسائل جز سیاست و در جامعه اداره جامعه این کار کار نیست مگر یه یعنی منادت دیگر اجتماعی باشه مثلا توی نو خود شارن میدونه که باید علمای حدود در که تا روز جمعه خودمون پدر نمیتونه بگه بکنه تا روز جمعه رو جاستی از مساله ای از مفاسدی میشه از این طرح بحثی رو که آوایان مطرح کردن خیلی, خیلی نیست. علمی نیست نکتهش که یک لحاظ علمی این تاخیر تختیرش از وقت حاجر نیست خب قبل از رفع حاجت مانعی نداره هیچ مشکلی نداره فرقی مگر در هر دو پس ملاکات دیگری پیش بیاد لو قبل از این وقتی که لسان دلیل نیا مخصوصا اون عللی که می میگه تمام احکام در شب مبعث نازل شده به هر بیان بیان تأثیری در چیز مگم مساله حسانوی باشه همون همست اگه معضول طریقه این بیان مراد نیست این بیان اسمال انتصاله شما بینید من تا... شما این بحث مقدمه را عید کرد این محاسم تا... محضوع که شما معضولیت مطرح نکنید تا معضولیت معضول ما نقام انتصاله که نروز به هم. ما اینج مسئله یعنی مرحله مربوط مولا است. برای میخواهم بگذارم. این دو تا طرز نه که با هم دیگه. ما اگر اون بحثمون وظیفه قاموگذار، قاموگذار در مقام امضا میتونه تاخیر بکنه فقط به خاطر نه. از زخ... حاجت نه. اما قبل از دست حاجت اشغال نداره. یعنی ما بین زمان خطاب تا زمان حاجت اون اشکال نداره. فرض کنید مثلا قاموگذار بیشتر احکامی رو بر روزه دیگه مثلا جعل خود روزه در ماه شعبان بوده اما چه مراد روزه میگیرن محرمه ها حالا چون ماه شعبان گفته شده خط بهانه خصوصیان کما خط به من قبل سو اما اون احکام سیام چجوری این ممکن ده 10 روز دیگه بعد بیان بشه مشکل نداره چه مشکلی نیست این نه no. بله. باشه در همین جهان اگر خدا میزانه که فیقا برای که بیان بکنه یک ازهی که هم در مدینه هستن اینا مساطر هستن اینا میشنن روزه واسه پا موشن میدان شهر خودشون به بیان به اینها نمیرسه برای این مشکل داره از این یک مسئلهی که طبق مو... موارد و باید ملاکات و مناسات رو بیست فی همینطوره یعنی اصل اولی در مسئله همین که تحقیل برای از وقت حاجه جایی نیست از وقت حکام جایی نیست اما هر دو حکمش قابل کموزیات هست جز احکام عقل نظری نیست که بیر ممتنه نه میتونه آنه جز احکام عقل عملی که با وجود مغیره یه و نقوب میشه وجود مغیره یعنی که حسنه قبی میشونه گرویه حسن میشه میشه از قبیه شما نقیده این و ضده و نیست این دیگه این بندس رو به همین مقدار اتفاق مخواه شد یکی باز آل خدا رو خواهیم بگم که شم اقدار مسائل کلامی البته این مسئله در میان فقه ما باز این چه ایسورانی صحبت کرده توی این مسئله تحصیل رو این نمیدونم شد چه شده چه اصاله شده در آزده بله. شکلی مفصل در مطلی تخییر بیان صحبت کرده و باز هم ما جایه هست در که ما باز هم برده و یکی از سوه باز تخییر بیان رو از وقت شکام بسته در باز این که آیا رسول الله بعد از این که وقت آیا باز در هم وقت تبلیغ بکنه یا حق دارن تبلیغ رو تخییر داده خوب این وزیفه رسولو از ایمانسا ولی بله وزیفه مولاد ولکه از کردم چون ادهش نه ادهشون اون مسئله میخواستن به حکم و مبنی کردن به حرسما خوب عقلی مولاد. بله. مولاد. نه حاجر که در تکریف کتاب نه اون نیست اون راه بعد باز مسئله شیخم یکی که از تحقیات همان مسئله هفته هم هم جواز تجریج در ما در نظر رو این مسئله همین تجریج در بیان در بیان با شواله موجود یکی دوستانی که مسئله داره بحث آخری میخواستم برما تحقیر بیان به نظر ما رو کنه یه آسی وقتی تعجیلات هست و اینکه دیگه دینارش هیچ نسبت به شهر مقدس در باز سلام الله علیه.